سؤال دوبامین بود که آیا این برنامه اقتصادی که شما میگید اقتصاد مقاومتی آیا یک امر خیالی و توهمی است آرزو دارید که این کارا انجام بگیره یا نه عملا ممکنه پاسخ این است که نخیر کاملا عملا ممکن است حتما چرا به خاطر زرفیت ها چون این کشور دارای ظرفیت فوق العاده است